داستان گربه ای ایرانی در شهر نشابور پیرزنی بود فقیر و تنگدست که پسر خونده‌ای داشت به اسم اقبال پیرزن بعد از مرگ شوهرش تنهای دلخوشی داشت و اون وجود اقبال بود با ذوق و شوق براش غذا درست میکرد رختش رو میشست و اتاقش رو رفت و روب میکرد تر و تمیز میکرد حاضر بود از صبح تا شب کار کنه و زحمت بکشه تا اقبال آروم و آسوده باشه اما در این روزها بیشتر مردم نیشابور فقیر بودن و بیچیز و اون پیرزن هم روز به روز فقیرتر میشد اقبال هم کار و کسب درست حسابی نداشت تا اینکه یه روز اقبال فکر کرد به سفر کشمیر بره و در اونجا پول پارو کنه. در اون روزگار مثل امروز مردم فقیر برای خودشون داستانا و حکایتهای درست میکردن و با آب و تاب برای همدیگه تعریف میکردن. اقبال هم از زبون دیگران شنیده بود، که کوچه ها و خیابون های کشمی رو با نقره و طلا فرش کردن و هر بیگانهی که پاش به اونجا برسه اجازه داره چند تا کیسه خیلی بزرگ برداره و همه طلاها، و ها و ها رو پر کنه داخل اون کیسه و به شهر و دیار خودش برگرده و تا آخر عمر آروم و آسوده زندگی کنه حتی شنیده بود که در کشمیر دیوار خونه ها از تلاست و در و پنجره ها رو با علماز و یاقود می پوشوندن. مردم در ظرف طلاق غذا می خوردن و خورده های طلا رو از کف اتاقها جارو می و توی آشقلدونی می ریختن. اقبال هم که اسمش رو جسم کرده بود که به کشمیر بره و چندتا تا کیسه پر از طلا و جواهر با خودش بیاره و مدر رو از فقر و تنگستی و بیچارگی نجات بده اما نیشابور کجا و کشمیر کجا راه دور و درازی بود و این سفر پرخطر برای جوانی مثل اقبال که کم تجربه بود و جسته کوچیک و ضعیفی داشت آسون نبود اقبال جوان شجاعی بود و از خطر نمی ترسید به علاوه اون مال و سروتی هم نداشت که از راه زنها بترسه که در کوه و کمر اون رو کمین کنن فقط ترس از حمله گرگ و کفدار داشت که برای دفاع از خودش شاخه بزرگی از یک درخت کهنسال و قدیمی رو برید و چوب دستی محکمی درست کرد و یک روز صبح چوب دستش رو به دست گرفت و کول بارش رو به دوش و به مادر خوندش گفت که میخواد به کشمیر بره و چند کیسه رو پر از طلا و جواهر کنه و بیاره. پیرزن زن که میترسید اقبال در این سفر تومه گرگ و پلنگ بشه گریه و زاری کرد و التماسش میکرد که نره و از این سفر چشم کنه. اما اقبال زیر بار نرفت، پیرزر هم ناچار تسلیم شد و چند دانه نان خشک و کمی پنیر و خورما که در خونه داشت در کل بارش قرار داد و در حق اون دعا کرد و اقبال به راه افتاد اقبال چند شبانه روز در اون راه های باریک و پرپیچ و خم سرگردان بود تا اینکه کاروانی رو از دور دید و در کنار جاده ایستاد تا کاروان رسید. سالار و فرمانده کاروان وقتی این جوان لاغر و ضعیف رو با چوب دستی و کوله بارش دید، مقصدش رو پرسید. اقبال گفت که قصد داره به کشمیر بره. سالار کاروان دلش به حال سوخت و گفت: جوان، از اینجا تا کشمیر راه زیادیه. اما تو شانس آوردی که ما میخواییم به کشمیر بریم من تو رو با خودم میبرم و باید تو از اینجا تا کشمیر در خدمت سرپرست کاروان باشی و در بستن و باز کردن بار و کارهای دیگه به دوستان من کمک کنی اقبال خوشحال شد و با اون کاروان همراه شد و هر کاری از او میخواستن باروی خوش انجام میداد و فرمانده کاروان از اون راضی بود و یک شب که ازش پرسید برای چه مقصدی به کشمیر میرید؟ اقبال گفت که چند کیسه بزرگ با خودم آوردم که پر از و جواهر کنم و زود به نیشابور برگردم فرمانده کاروان لبخندی زد و چیزی نگفت و کاروان همچنان میرفت و پیش می رفت و از کوه و کمر و دره و تپه و بیابان و هاشیه جنگل عبور می کرد تا اینکه بعد از هفته ها کاروان در مرکز کشمیر بارش رو انداخته و اقبال از سالار کاروان خدافزه کرد و کیسه رو از کول بارش در آورد و دوان دوان رفت تا رسید به کوچه ها و خیابون های اون شهر ولی وقتی به اطراف خودش نگاه کرد از تعجب خوشکگد در خیابان های کشمیر نه از طلا اثری بود نه از جواهر خبری بود. کوچ ها خیابون های اونجا درست مثل کوچ ها خیابون های بقیه شهرها بود به ساختمون های نگاهی کرد. به در و دیوارهای خونه ها یه نگاهی انداخت ولی هیچ چیز غریبی نبود نه دیوارها از طلا بود نه ساختمانها در و پنجره هم نه الماس داشتن نه یاقوت بلکه همه از چوب درست شده بودند و بعضی از درها و پنجره هم شکسته و رنگ و رو رفته بودند و خیلی هم بد منظره خیره شده بود یه موش توی مغز خودش میکوبید یه موش به در و دیوار و اصلا نمیدونست که باید چه کار بکنه این همه گرفتاری برای خودش درست کرده بود و حالا رسیده بود به کشمیر رو میدید که اینجا هم مثل بقیه شهرهاست و تنها تفاوتش با نیشابور اینه که نیشابور شهرشه و دیار و سرزمینشه و در اینجا که کشمیره قریبه تا مدتی گیج و منگ بود بدون منظور و بی هدف بدون اینکه جای و کسی و بشناسه توی کوچه ها خیابونها راه میرفت تا اینکه خسته شد و روی سکو دم در یه خونه خیلی بزرگ نشست. انقدر خسته بود که حالش رو نمیفهمید. روی همون سکو و خوابش برد. یه وقت متوجه شد که یه نفر اونو تکونش میده. چشمش رو باز کرد؟ مرد بد قیافه ای رو دید که سر او داد میکشید و به او فحش میداد. که چرا؟ روی سک و دم در خونه اونا خوابیده و اقبال، هرچه به این مرد میگفت که غریبه به کسی کاری نداره اون فرد دستبردار نبود اما اقبال که گیج و خسته بود و نمیدونست به کجا بره و چیکار کار کنه و این مرد که نامش سابو بود و آشپز اون خونه بزرگ وقتی دید که با فوش و ناسزا نمیتونه اون رو از روی سکوی بلند برداره رفت چوب درازر با خودش آورد و با چوب توی سر اقبال بیچاره زد در همین گیرودار بود که صاحب اون خونه بزرگ که آدم خوب و خوشقلبی بود از راه رسید و چشمش که به این منظره افتاد که آشپزش داره اقبال رو کتک میزنه دلش به حال اقبال سوخت و شوب رو از دست سابوی آشپس گرفته و اون رو از کتک زدن یک جوان بیگناه سرزنش کرد و از اقبال پرسید که کی هستش؟ چه کار میکنه در کشمیر؟ صابو جلو دوید و گفت ارباب دلتون برای این جوان نسوزه برای دزدی اومده بود چند ساعته که روی این سکو خوابیده و منتظر اینه که وارد خونه بشه و چیزی بدزده لل اون رو کنار زد و گفت بذار این جوان بیچاره حرفش رو بزنه لل همون سابخونه اون خونه بزرگ هست اقبال سر و صورت خونالودش رو پاک کرد و برای لل داستان خودش رو توضیح داد اقبال قیافه نجیب و مظلومی داشت لل وقتی داستانش رو شنید گفت اقبال حالا که دیدی خیابانهای کشمی رو با طلا و جواهر فرش نکردن چاره ای نداری جز اینکه کاری پیدا کنی که از گروستنگی و درماندگی تلف نشی. فیلن به خونه من بیا و در آشپزخونه کنار صابو مشغول به فعالیت شد تا ببینم چی میشه سابو اخلاق تند و تیزی داشت اما آشپز خوبی بود صابو باز هم جلو دوید و گفت ارباب: چطور ندید و نشناخته به این جوان اطمینان میکنی و اون رو به خونه خودت راه میدی لال گفت از ظاهر و قیافش پیداه که دروه و حق باز نیست اون رو به آشپزخونه ببرد و از هر جهت مراقبش باش. اقبال بینوا از همون روز زیر دست صابو در آشپزخونه مشغول کار شد. صابو که آدم بیرحمی بود سختترین کارها رو به عهدهی اقبال گذاشت و به هر بهونه سرش داد میکشید. و گاهی با چوب بلندش توی سر و صورتش میزد و از همه بدتر اینکه وادارش کرده بود شبها در انباری نزدیک آشپزخونه بخوابه که مرکز تاخت و تاز موشها بودش اقبال از ترس موشها جرئت نمیکرد تا صبح چشم روی هم بذاره و لحظه رو بخوابه و به این ترتیب از صبح زود که کار رو در آشپزخونه شروع میکرد خوابالود بود و صابو بهونه به دست می آورد و هر ساعت به شکلی اذیتش میکرد و کم کم اقبال متوجه شده بود که اگه به همین شکل پیش بره به زودی از پا در میاد و سلامتی خودش رو از دست میده اما در میان اهل خونه نرگس دختر ارباب از همه دلسوزتر و مهربونتر تر بود و چون گهگاهی برای سرکشی به آشپزخونه می اومد متوجه وضوحال اقبال شد و با سراحت به صابو گفتش که حق نداره این جوان رو کتک بزنه و از اون به بعد سابو کمتر اون رو کتک میزد. اما اما عیب کار این بودش که موشها پیشنهاد هیچ کس رو قبول نمیکردن و این بار هم نرگس بود که متوجه شد اقبال همیشه آلوده. و یک روز علتش رو پرسید و اقبال داستان موش ها رو براش توضیح داد نرگز خندید و همون روز چند تا سکه بهش داد و گفت روزهای دوشنبه در محله ما بازاریه که هر چیز در اون پیدا میشه فردا دوشنبه است به این بازار برو در گوشه از این بازار هر جور حیوانی رو میفروشن شاید بتونی گربه خوب و زرنگی پیدا کنی که تو رو از شر موش ها نجات بده اقبال روز بعد به اون بازار رفت. بازاری به این بزرگی در تمام عمرش ندیده بود. هر کس هر چی لازم داشت از مروارید و الماس گرفته تا منقل حلبی و کاسه بشقاب شکسته تو اون بازار پیدا میکرد. در یک گوشه مخصوص خرید و فروش جانوران اهلی و وحشی بود. و اقبال به چشم خودش دید که چند نفر به بازار اومده بودند تا برای اربابشون فیل بخرند و در میان ها یک فیل رو که خورتوم بسیار درازی داشت انتخاب کرده بودند و بر سر قیمت اون با فروشنده چونه می‌زدند و اما در همین گوشه جایی بود برای خید و فروش سگ و گربه و اقبال در میان گربه ها ناگهان چشش به یک گربه سفید و بسیار خوشگل افتاد که موهای بسیار بلندی داشت و با چشمهای براق و قهوه‌ای بهش نگاه میکرد فروشنده وقتی متوجه شد که اقبال به اون گربه چشم دوخته جلو رفت و براش توضیح داد که این گربه از نژاد بسیار والایی از گربه های ایرانیه که در دنیا نظیرش پیدا نمیشه و اقبال هم تردیدش رو کنار گذاشت و هر چقدر پول داشت به فروشنده داد و گربه ایرانی رو خرید و با خودش به خونه آورد و اون رو به خوابگاه وحشتناک خودش برد و در اونجا رهاش کرد و به آشپزخونه رفت و مشغول کار شد اون روز خانواده لل چند دسته مهمان داشت و کار آشباز خونه معمولا در چنین روزهای خیلی زیاد بود اقبال فرصت سرخاروندن نداشت تا غروب آفتاب این طرف و اون طرف می دوید سابوی آشپز هم در هر فرصتی که پیدا می کرد یه نیشی به اقبال می زد. یه ناسزای به اقبال می گفت. و اقبال که دیگه با این وضع عادت کرده بود دندان سر جگر گذاشت و حرفی نمیزد و هرچی بود این روز هم گذاشت مهمان ها اومدن و رفتن و اقبال بعد از اینکه که ظرف ها رو شست و کار آشبستنه رو تموم کرد به خوابگاه خودش رفت و ظرفی که پر کرده بود از گوشت مرغ و بوغلم و بره جلوی گربه ایرانی گذاشت ولی گربه اصلا لب به اون نزد اقبال تجرب کرد که چرا گربه ایران چیزی نمیخوره اما با خودش گفت که شاید این گربه غذای مخصوص خودش رو داره که من خبر ندارم با این حال انقدر خسته بود که فکرش درست کار نمیکن با لباسی که تنداش توی رخت خواب رفت و به خواب رفت در روشنایی کم رنگ از خواب بیدار شد و به اطرافش نگاه کرد، منتظر بود که موشها بیان و سر و روی اون بالا برن ولی هر چقدر صبر کرد از موش ها خبری نبود هیچ گونه سر و صدایی در خوابگاهش نبود مثل اینکه جست و خیز موش ها تموم شده بود سرش رو بالا کرد و اطرافش رو یه نگاهی کرد همه‌چرا امن و امان بود و در کنار بالشش گربه‌ی سفید ایرانی خوابیده بود و خور خور ملایمی میکرد اقبال هنوز حقیقت رو باور نمیکرد از جاش بلند شد و همه جا رو بررسی کرد همه چیز مرتب و منظم بود حتی رد پای یه موش رو پیدا نمیکرد و تازه میفهمید که چرا دیشب گربه سفید ایرانی به اون همه گوشت مرغ و بوق قلمو بر نگاه هم نمیکرد چون با گوشت لذیستری خودش رو سیر کرده بود بله با گوشت موشها و از اون شب به بعد اقبال دیگه از موشها ترسی نداشت روزها در آشپزخونه زحمت میکشید و زخم زبان و اخلاق تند و زننده سابر رو تحمل میکرد. ولی در عوض شبها آسوده میخوابید و به این ترتیب روزها و هفته ها گذشت و اقبال با اینکه برای مادر مادرخوندهاش دلتنگی میکرد ولی دلش نمیخواست دست خالی به نیشابور برگرده و شاهد فقر و بینوایی پیرزن بشه و چاره جز صبر و تحمل نداشت و زندگی اون در اون خونه بزرگ و در کنج آشپزخونه میگذشت تا اینکه روزی از روزها ناخدای دلاور به اون خونه اومد و اونطور که خدمت گزاران میگفتن ناخدای دلاور هر سال میاد و هر کس جواهر و طلا یه چیز قیمتی داشته باشه بهش میده که ناخدا با کشتی بزرگ خودش به سواحل افریقا بره این چیزها رو به قیمتهای بسیار خوب به ثروتمندان آن محدوده میفروخت و در بازگشت 90 درصد از این مبلغ رو به صاحب جنس میداد و ده درصد رو برای خود و کارگران کشتیش برمیدارند. و ناخدای دلاور انقدر آدم شریف و درستکاری بود که همه بهش اعتماد داشتند و قیمت ترین جواهرات رو با خیال آسوده بهش میسپردند. آن روز هم ورود ناخدا به خانه آقای لل همه رو به تلاش انداخته بود. هر کس از گوشه می و چیزی رو می آورد و به ناخدا میسپرد. اما اقبال اون روز هم افسرده و درمانده در گوشه آشپزخونه مونده بود و ظرفها رو میشست و در شوق و شاده دیگران شریک نبود و هیچ کس هم به فکر او نبود غیر از نرگس دختر عرباب که دلش براش میسوخت و اون دوست هم به آشپزخونه رفت و بهش گفت اگه چیزی داری به ناخداگا بده تا برات بفروشه اقبال که چیز با ارزشی نداشت با غم و ناراحتی بهش نگاه کرد و حرفی نزد اما نرگس کمی فکر کرد و گفت اقبال اون گربه ای ایرانی رو بیار به ناخدا بده اقبال گفت نرگس خانم سر به سرم نزار دیگه ولی نرگس اصرار کرد و گفت شاید اونجا این گربه قشنگ خریداری داشته باشه اقبال هنوز تردید داشت و پیش خودش فکر میکرد که اگه گربه رو از خودش دور کنه دوباره موشها به خوابگاهش هجوم میارن و حمله ور میشن نرگس فکرش رو خوند و گفت از موشها ها ترسی نداشته باش فردا روز دوشنبه است میتونی از بازار گربه دیگهای بخری و بیاری که با موشهای خوابگاهت در بیافتند. اقبال تسلیم نظرش شد و گربه سفید ایرانی رو بغل کرد و برد به ناخدا داد. همه اهل خونه میخندیدن و فکر میکردند که اقبال میخواد با ناخدا شوخی کنه. گربهش رو برای سفر به آفریقا به ناخدا بسپاره. ولی ناخدا که مرد خوب و باادبی بود چیزی نگفت و گربه ایرانی رو همراه با چیزهای قیمتی که خانواده لال و خدمتکارانش بهش داده بودن با خودش برد. و روز بعد اقبال به بازار رفت و گربه سفید و قشنگی خرید که درست شکل و شمایل گربه‌ای بودش که به آفریقا رفته بود. و این گربه هم از همان نژاد ایرانی بود. موهای بلند و سفید و چشمهای براقی داشت. و مثل اون در جنگ با موشها بیرحم بود و به همین علت بعد از مدتی اقبال گربه اول رو فراموش کرد و به زندگی عادی خودش در اون خونه ادامه داد و هیچ هیچگونه امیدی نداشت که روزی دستش به جایی بند بشه و کار و شغل مناسبی پیدا کنه که بتونه پول زیادی انداز کنه و به نیشابور برگرده قضیه گربه و ناخدا و سفر آفریقا هم کم کم فراموش شد و در خانه لل هیچ کس از این چیزها حرفی نمیزد دیگه. هرچند که اقبال خیالش از طرف موشا آسوده شده بود ولی از دست سابوی آشپز دلش خون بود. روزی نبود که این آدم بد و به بحانه سرش داد نکنه. زخم و زبونی بهش نزنه. تنها دلخوشیش این بود که صابو بهش فوش میده ولی از ترس نرگس دختر ارباب کتکش نمیزنه و به این ترتیب ماه ماهها گذشت تا اینکه روزی از روزها اقبال از خدمتکاران خونه شنید که ناخدا از سفر آفریقا برگشته و اون روز قرار به اونجا بیاد و همه صبرانه در انتظارش بودند تا اینکه انتظارها اصل اون روز به سر اومد و ناخدا به اونجا آمد و دو نفر از کارگران کشتی هم همراه خودش آورده بود که چند کیسه بزرگ روی دوششون قرار داده بودند و همه با توجه به اون دوتا کارگر و کیسه هایی که آورده بودن نگاه میکردند یک کنجکاف بودند که زودتر از غذایا سر در بیارند آقای لل و همسرش و همه خدمتکاران دور ناخدا جمع شدند. ناخدا از همه اونها تشکر کرد و صندوقچه چی رو درش رو باز کرد و نام تک تک اهل خونه که چیزهایی رو بهش سپرده بودن خوند و به هر کدوم چند سکه طلا داد و گفت که این سکه ها در بهای اون چیزهایی که بهش داده بودن هستش همه اهل خونه به خصوص خدمتکاران از معامل با ناخدا خوشحال شده بودن آقای لل وقتی ناخدا سهم هر کس رو بهش داد ازش پرسید ناخدا اون کیساهای بزرگ که اون دوتا کارگر با خودشون آوردن برای کیه؟ ناخدا گفت اول به من بگو اون شاگرد آشپزخونت که اهل نشابور بود کجا سران تا بعد جوابت رو بدم آقای لل گفت حتما منظورتون اقباله درسته؟ اون از آشپزخونه بیرون نیومده پیش خودش حساب میکنه گربش انقدر قیمتی نبوده که بیاد و از شما چیزی رو طلب کنه ناخدا گفتش که زودتر یه نفر بره و اون رو بیاره دو نفر از خدمتکاران همراه نرگس به آشپزخونه رفتن و اون رو نسل ناخدا بردن اقبال که با خجالت سرش رو انداخته بود پایین جورت نمیکرد در چشمهای ناخدا نگاه کنه ناخدا وقتی چشمش به افتاد گفت بیخود و بی نیست که نام تو اقباله اقبال این کیسه رو میبینی پره از طلا و نقره و چیزهای بسیار قیمتی و همه اینها مال توه و چند کیسه دیگه هم پره که از اینجور چیزهای قیمتی توش هست که فردوس و کارگران من برات میارن وبه تو تحویل میدن نرگس گفت ناخدا شاید قصد داری با اقبال شوخی کنی این روزها اوقات اقبال خیلی تلخه و برای شوخی آماده نیست نرگس خانوم من قصد شوخی ندارم و در عمرم به کسی دروغ نگفتم قضیه از این قراره که ما در این سفر در سواحل آفریقا با رئیس قبیله آشنا شدیم که ثروتش حد و حساب نداشت و هرچه با خودمون برده بودیم همه رو برای خودش و افراد قبیلش خرید شبی ما رو مهمون کرد اون شب در ضمن اینکه که با همدیگه صحبت میکردیم برای من توضیح داد از همه نیمت های دنیا برخورداره اما یک قصه بزرگی داره پرسیدم که قصه بزرگ چیه؟ گفت در اطراف ما موشهای فراوانی هستند و شبها یک لحظه نمیتونه می در چادر خوابش راحت باشه و بی‌خواب تا صبح. وقتی این داستان رو شنیدم، صبح روز بعد گربه ایرانی رو براش بردم و گفتم این حیوون رو امشب در خوابگاه خودت بزار و نگهداری کن و فردا نتیجه‌اش رو به ما بگو. رئیس قبیله که تا حال گربه ندیده بود با تعجب گربه را به یکی از خدمتکارانش داد و قول داد که اون شب حیوان رو به خوابگاه خودش ببره. اما برای ما کاری به وجود اومد که چند روز نتونستیم سراغش رو بگیریم تا اینکه یک هفته بعد برای خدافیسی نزدش اومدم چشمهاش از خوشحالی برق می زد و گفت که چندین روزه که منتظرتون هستم نمیدونید این گربه ایرانی چه خدمت بزرگی برای ما انجام داده که توضیحش رو با هیچ زبانی امکان پذیر نیست که براتون بگم من و همراهانم یک ساعت در حضور رئیس قبیله بودیم و با شوق و برای ما توضیح میداد که گروه ایرانی چنان زهر چشمی از موشها گرفته که حتی یکی از موشها جرأت نداره به خوابگاه نزدیک بشه و اما در موقع خدافزی رئیس قبیله مقدار زیادی طلا نقره و چیزهای قیمتی به ما داد که به صاحب این گروه ایرانی برسونیم و ما یک قسمت از اون رو در این دو کیسه ریخت و بقیه رو هم فردا صبح کارگران من میارن و تحویل دوست عزیزمون اقبال میدن اقبال وقتی این داستان رو شنید از شدت شوک به گریه افتاد و چند دقیقه گذشت تا تونست بر خودش تسلط پیدا کنه و حرفی بزنه همه دورش جمع شده بودن و میخواستن بدونن که او میخواد با این همه طلا و نقر و چیزهای قیمتی چه کنه و چه نقشهی برای زندگی آیندش داره. اقبال گفت این چیزها مال من نیست. همه اینها برای نرگس خانومه چون نرگس خانوم پول خریده این گربر به من داد و نرگس خانوم بود که من رو تشویق میکرد که گربر رو به ناخدا بدم. نرگس ازش تشکر کرد و گفت این گروه ای ایرانی مال تو بود و همه این چیزها مال توست. تو به کشمیر اومده بودی که با چند تا کیسه پر از تلا و جواهر به نیشابور برگردی و چه خوب شد که تو به آرزوت رسیدی. اقبال چند روز بعد همراه یک کاروان بزرگ به نیشابور برگشت و بقیه اون رو به راحتی گذارمد. از داستان گربه ایرانی این نتیجه رو گرفتم که با یک ضرب المثل میخوام بیانش کنم. شنیدم کی بود ماننده دیدن. فقط ما نباید به شنیده ها اکتفا کنیم. ما باید خودمون ببینیم، خودمون تجربه کنیم، خودمون آگاهی نسبت به اون شنیده ها پیدا کنیم. و تا زمانی که ما فقط بشنویم و صحتی برای اون شنیده در نظر نگیریم اون معلوم میشه که مسیر ما رو منحرف میکنه پس هر چیزی که میشنویم رو بهش اکتفا نکنیم برای اون شنیده دلیلی بیاریم دلیلی که محکم باشه، دلیلی که استوار باشه، دلیلی که درست باشه و ما رو در مسیرمون هدایت کنه خیلی ممنونم از شما دوستان خوبم که تا انتهای فایل صوتی همراه من بودید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها